این حرف‌ها در عرشه لوکس کشتی که به کادیکوی می رفت رد بودش یکی از طرفین صحبت مردی درشت اندام بود و دیگری مردی ریزه میزه و لابر من در طرف دیگر میز نشسته بودم آن دو کنار هم نشسته بودند. مرد ریزه میزه گفت وقتی میخواستم از آنکارا بیام دو تا از دوستان التماس کردن گفتن نکنه یه وقت به سرت بزنه و آپارتمان تو خالی کنی مرد درشت اندام گفت چطور مگه آپارتمانت بزرگ بود دو تا اتاق و یه فزرینایی اما جاش خوب بود اجارش هم کم بود آها آه پس اگه دوستات هر مجرد باشن واسهشون خوبه اندازه نه دوشون متأهلن همین رو میخوام تعریف کنم دیگه چرا اینقدر از بابت خونه در عذابی میدونی چرا اینقدر خونه کم شده چون نصف خونه و آپارتمانایی که میبینی خونه مجردیه ملتفت شدی؟ مرد درشت ندهام به دوست ریزه میزش گفت داری اغراق میکنی؟ این خبر هم نیست مگه چند نفر اونقدر پول دارن که خونه مجردی هم بگیرن خونه مجردی گرفتن خیلی راحته اگه پولدار دار باشی خودت تنهایی خونه مجردی میگیری اگه پولت بیشتر باشه چند تا خونه مجردی میگیری اگه پولدار نباشی اون وقت مونده به پولتون دو تا رفیق، سه تا رفیق، پنج رفیق با هم یه خونه مجردی میگیرین مثل شرکت سهامی. خونه مجردی با 20 شریک هم هست. نه بابا مگه میشه؟ دنیا را ببره تو رو خواب میبره تو این دور زمانه مگه آدمی هم مونده که خونه مجردی نداشته باشه؟ همچین آدمی اصلا وجود نداره. وگرنه مگه اینقدر کم بوده مسکن پیش می اومد. اگه دیدی پرده خونه هیچ وقت باز نمیشه بدون اونجا خونه مجردیه خلاصه داشتم میگفتم از آنکارا که داشتم میومدم دو دوتا از دوستان به ملتماس تماس کردند که خونهمو به اونا بدم چون هم اجارش کم بود هم جاش خوب بود اما قرارداد اجاره به اسم من بود و نمیتونستم به کسی دیگه اجارش بدم دوستام گفتن اجاره نامه بازم به اسم تو باشه اما پول اجاره رو ما میدیم گفتم به یه شرط به این شرط که وقتی اومدم آنکاران منم تو این خونه بمونم. قبول کردن منم کلید آپارتمانو به اونا دادم و اومدم استانبول نمیدونم سه ماه بعدش بود چهار ماه بعدش بود خلاصه از ماجرا چهار ماه گذشته بود که یه کاری تو آنکارا واسم پیش اومد و رفتم اونجا با خودم میگفتم خوبه دیگه خونه داریم و لازم نیست بی پول هتل بدیم یه دست کلید خونه رو داشتم واسه اینکه مشکلی پیش نیاد به دوتا دوستم که خونهم دستشون بود خبر دادم که شب میام خونه روز از بس توی شهرین و اونور رفته بودم خسته شده بودم زودتر رفتم خونه و گرفتم خوابیدم هنوز چشمام گرم نشده بود که از بیرون صدایی شدیدم. انگار در باز شده بود بعد صدای پا اومد بعدش صدای زن در اتاقی که توش خوابیده بودم باز شد و چراغ روشن شد دیدم یه مردی که تو عمرم اصلا ندیده بودمش با یه زن روبروم و ایستاده قبل از اون که من ازش بپرسم اون ازم پرسید تو کی هستی دیگه توی رخت خواب نشستم و گفتم اشتباهی اومدین لابد میخواستین یه واحد دیگه برین اینجا این منه مرد گفت چی چی رو یه واحد دیگه میخواستین برین این که تو دست منه برگ چقوندر نیست کلیده این کلیدم که هر دری رو باز نمیکنه هر دری رو باز نمیکنه اما این درو در انگار باز کرده خواهش میکنم از خونم برید بیرون میخوام بخوابم مردک از اون زبون نفهما بود گفت ببین رفیق زیادی هارتوفورد نکن پاشو جمعش کن گم شو برو بیرون نزار این وقت شبیه بلای سر خودم و خودت بیارم گفتم اما من از دست شما شکایت میکنم که بی اجازه وارد خونه من شدین و قانون مسونیه خانه شخصی رو زیر پا گذاشتین گفت تو فعلا رو گمشو بیرون بعدن هر غلطی دلت بکن تو آنکار اون وقت شب تو هتل ها هم جاگیر نمیاد به مردک گفتم ببین دوست عزیز یه فکر خوب اومد به سرم اینجا دو تا اتاق هست واسه هر دومون کافیه صبح که بشه تو روشنایی روز معلوم میشه حق با کی بوده؟ مردک این فکر را پسندید و گفت: خیلی خوب. اما تو باز بری تو اون یکی اتاق بخوابی. ما به این اتاق عادت کردیم. وسایلمو جمع کردم و به اون یکی اتاق رفتم. هنوز چشممو نبسته بودم که در آپارتمان یه بار دیگه باز شد. چراغ روشن شد. یه زن و یه مرد اومدن تو اتاقی که من خوابیده بودم. چراغ راه رو روشن بود اما چراغ اتاق خاموش. مردک مثل دامات های فرنگی که عروس را به هجله میبرند زن را بلند کرد و انداخت روی تخت منم که اونجا خوابیده بودم یک دفعه انگار یک گونی صد کیلوی برنج افتاد روم داد زدم و از جان پریدم تا پریدم زنک که نفهمیده بود چه خبر شده داد زد هنگار یکی اینجاست رو کردم به مردک و گفتم این چه بیاب روییه که درآور딘 مردک نگذاشت و نورداشت گفت تو بیا روی درآوردی یا من تویی که برنامه رو خراب کردی امروز چه روزیه؟ سه شنبه. درسته سه شنبه است. خب ساعت چنده؟ دو روب اینها رو گفت و دفتری از جیبش در آورد و بهش نگاه کرد و گفت خب اینم برنامه هر هفته سه شنبه ها شب از ساعت دو تا شیش صبح این اتاق مال منه تازه یه روب هم دیرتر اومدم تا اونی که قبل از من نوبتشه هول نکنه الان نوبت منه گفتم نکنه نوبتتون جای دیگه باشه گفت. مگه میشه؟ من هر هفته میام اینجا، هیچ سشنبهی ای رو جا نمیندازم. همین سشنبهی پیش هم اومده بودم، این را که گفت زنک یغش رو گرفت، ای بی هیا، ای آشغال. تو که گفته بودی سشنبهی قبل خونه بودی، گفته بودی زنت نزاشته، چه میدونم اجازه نداده، بعد با کیف شروع کرد به زدن تو سر مردک، مردک که همینجور داشت کیف تو سرش میخورد فریاد زد و گفت او چه خبرته حالا چون اینجا اومدم حتما واسه کار خلاف بوده به جون تو نباشه به جون خودم با زنم اومده بودم زنه که انگار حس کرد کیف کافی نیست برای همین صندرش رو از پاش در آورده و با پاش نش تو سر مرد زد ساکتشو بی وجود به خاطر آدم بی همه چیزی مثل تو ببین چه کارها که نمیکنم اون وقت تو مردک گفت آخه چرا قصاص قبل از جنایت میکنی؟ اول گوش کن ببین ماجرا چی بوده بعدش هر کاری دلت خواست بکن اون شب خونمون مهمون زیاد اومده بود و شب میخواستن همونجا بمونم تو خونمون دیگه جا نمونده بود من و زنم هم اومدیم اینجا نزن تو رو جون مادرت دیدم دیگه جای من اونجا نیست وسایلم و وردشتم اومدم توی راهرو یک کاناپه بود خودمو روی کاناپه جمع کردم و خوابیدم تازه چشمم گرم شده بود که صدای پیچ پیچ شنیدم دیگه معطل نکردم زود چراغ روی میز رو روشن کردم دیدم یه زن و مرد اونجا وایسادن و از تعجب چشماشون گیرد شده. مرد لاغر بود و مثل اونایی دیگه بهم به حمله نکرد. فقط گفت: ببخشید، خیلی عذر میخوام نکنه ساعت و قاطی کردیم؟ وقتی دیدم یه مرد ملایم روبرون وایستاده انگار دل و جرأت پیدا کردم. داد زدم: این چه وضعشه؟ اینجا خونه منه. مرد گفت: به من یک کلید دادن. سوم هر ماه این کاناپه تا صبح مال منه. کی کلید داده؟ سبر کنین اسمش تو که زبونمه زکی بود؟ زکایی بود؟ خلاصه بازه شروع میشد اسمش ماهی پنج لیره کرایه کلیدو میدم تا سه سنت تا صبح مانده بود فاری باسنام پوشیدم و زدم تو خیابون وقتی از در بیرون می رفتم دیدم دو نفر دیگه دارن از پله ها بالا میان. تا صبح توی خيابونو گشتم ساعت نه رفتم سر وقت دو دوستم که خونمو بهشون سپرده بودم هیچ از دهنم در نمیومد نسارشون کردم آدمای رز پس فترتا شما که میدونن اجاره نامه به اسم منه این چاوب روزیه که در آوردین میخوین پلیس امنیت اخلاقی بیاد سراغم یکیشون گفت به جون تو اجارش واسمون سنگین بود حقوقم کفاف خرج خونه خودمو نمیده اون وقت چه بیام و 270 لیره اجاره خونه مجردی بدم تازه از او خونهم که ما یکی دوبار بیشتر استفاده نمیکنیم گفتیم دو سه نفر دیگه پیدا کنیم اینجوری پول اجاره بین چند نفر تقسیم میشه و به کسی فشار نمیاد واسه اونا هم نفر یکی لیت ساختیم پول اجاره واسه اونها هم سنگین بود اونا هم هر کدوم چهار نفر دیگه پیدا کردن و از هر کدومشون 50 لیره ماونه میگیرن البته واسه اون 16 نفر هم کلید ساختن راستش بعد از اون دیگه افسار از دست ما رفت بیرون و نفهمیدیم چطور شد گفتم خب الان باز چی کار کنیم ما تو همین فکریم به هر کی کلید دادین ازش پس بگیریم کدوم رو میخوای بگیری همه به هم دیگه کلید دادن همه تو آنکار از خونه مجردی ما استفاده میکنن حتی یه نفر کم درود هم نمونده که تو جیبش کلید آپارتمان ما نباشه همشون برنامه منظم دارن شش هم وستم و دهنه باز کردم و هر چی از دهنم در می بارشون کردم آخر سرم گفتم من الان میرم گفت در عوض میکنم هر دو با هم گفتند نه مباده هم چی کاری بکنی خفشین واسه چی میگین قفله عوض نکن نه یه وقت این کار نکنی ها بودجهمون به هم میخوره کدوم بوجه؟ چطور وقتی ماه به ما اجاره خونه مجردی میدین بوجهتون به هم نمیخوره چی میگی تو رفیق؟ خونه مجردی واسه ما مجانی تموم میشه. تازه ماه به ماه یه پولی هم گیرمون میاد. نه که اجارش 270 لیره نیست. من به سه نفر اجاره دادم و از هر کدوم ما یه 75 لیره میگیرم. اینم به سه نفر اجاره داده. 6 تا 75 لیره میکنه به عبارتی 450 لیره. 270 داش دو میره پای اجاره، میمونه 180 لیره. یعنی نفر 90 لیره واسه ما میمونه. شما به فکر من نبودین، منم به فکر شما نیستم. اگه به فکر ما نیستی به فکر اون بدبخت بیچارهایی دیگه باش. هرکی که با 75 لیره از ما کلید گرفته، خودش هم به چهار نفر دیگه کلید داده و از هر کدوم ماهی 50 لیره میگیره. یعنی ماهی 125 لیره کاسبی میکنه و خونه مجردی هم واسهش مجانی میفته. اونایی هم که به 50 لیره اجاره کردن، هر کدوم به 4 نفر کلید دادن و ماهی 25 لیره اجاره میگیرن. یعنی ماهی 50 لیره کاسبی میکنن، اونها هم به کسای دیگه اجاره دادن. حتی اگه کتاب کردن نتونستن از این کار سر در بیارم خونه مجردی ما واسه همه مجانی تمام شده. یعنی هر کی کلید دستش افتاده، مایی همینجوری پنجاه لیره صد لیر کاسبی میکنه ما خودم گفتم عجب کارو پرسودیه. عین ماشین پول چاپ کنی، اما معلوم نیست این پول از جیب کی در میاد. همینجوری پولی که از در و دیوار میریزه تو تالا هم چی چیزی دیده بودین؟ اگه قفلو عوض میکردم همه‌شون بیچاره می‌شدن. بودجه‌شون به هم می‌ریزه. از اونجا که کرایه کلی تا پنج دیره پایین اومده، خودت حساب کن ببین چند نفر نفری چند لیره کاسبی میکنم مرد درشت اندام از دوست ریزه میزش پرسید. خب بعدش چی کار کردی؟ فاری قفل عوض کرد و به سابخونه گفتم خونه رو تختیه میکنم سابخونه گفت خودم میخوام اونجا بشینم. منم برگشتم اون 15 روزه به سابخونه یه نای واسنفر استانب تو نامش نوشته بود از صبح تا شب از شب تا صبح یه عده کلید به دست میان و زور میزنن تا در کنن وقتی هم میبینن درواز نمیشه قورلوند میکنن و میگن این چه وضعشه تو برنامه که این ساعت نوبت منه بعدش هم میذارم میرن صاحب خونه تو نامش کلی لیچار بارم کرده بود بعدش اینم صاحب خونه از اون خونه در اومده و اونجا رو داده اجاره اما هر مستجری که میاد بیشتر از یه هفته دووم نمیاره مرد درشت اندام به دوستش گفت میگم اما یا همه گیه دوستا دارم که همشیم. هر کدوم های پنج لیره بذاریم ها بساره چیه؟